ی کتوله ها در گذشته های دور که آرزوها کمتر به حقیقت می پیبست، دو دوست وجود داشتند. یکی آهنگر و دیگری بازرگان که اغلب با هم به مسافرت می رفتند. آهنگر مرد جوونی بود با صورت ظریف و موهای زیبا. تنها آرزوی او این بود که پول تهیه کنه و با دختر محبوب دوران کودکیش ازدواج کنه بازرگان دو برابر آهنگر سن داشت و چندین بار شانسش را امتحان کرده بود و مقداری پول به دست آورده بود اما اون آدم قانهای نبود میخواست ثروت زیادی به دست بیاره و در این راه هم خیلی تلاش کرد روزی این دو دوست با هم از جاده آهنگر جوان، به تنهایی گام بر داشت بازرگان هم با برامدگی روی شونه هاش که نازشی از شدن روی دفترهای تجارهی بود راه میرفت. اون همیشه این دفترها رو با دقت تمام همراه خودش حمل می کرد آهنگر رو به بازرگان کرد و گفت اگه یکم عجله کنی میتونیم قبل از تاریکی هوا به مهمون خارج شهر برسیم اما بازرگان گفت تو باید کمی قدم هات راه تر کنید تا من بتونم با تو همراهی کنم وقتی که شب شد اونها به یه درخت کوچیکی رسیدند و متوجه شدند که از داخل درخت صدای موزیک دلنوازی به گوش میرسه اگر پرسید یعنی چی؟ چه کسی تو این ساعت موزیک میزنه؟ نوسش با تحصف گفت احتمالا یه ادهه از جوونای نادون دهگده جشم انداختند. آهنگر گفت بیا اونجا بریم ببینیم چه خبره. بازرگان در حالی که به خاطر تلف کردن وقتشون گرگر میکرد، دنبال دوست جوونش راه افتاد و به طرف محلی که صدا می اومد یعنی داخل درخت رفت. درست وسط روشنایی گروهی رو دیدند که می و جست و خیز می و آواز می خوندند. اونها جوانای دهکده نبودند بلکه مردان کوتوله بودند. در وسط دایره یه کوتوله ایستاده بود که قدش از اونای دیگه بلندتر بود و ریش سفیدی داشت که به پاهاش می رسید. اون با تمام وجود مشغول نواختن ویولن بود. مثل اینکه تمام زندگیش به اون بسته است. موزیک عجیبی بود با صدای سهرامیز. طوری که دو مسافر با شنیدن اون نتونستن از جای خودشون تکون بخورند. ناگهان کوتوله که وسط ایستاده بود ویولونش رو زمین گذاشت و از بین دوستاش عبور کرد و به طرف اون دو مسافر دوید و به اونها دستور داد که به جمع اونها بپیوندند. بازرگان خیلی ترسید. اما آهنگر جوان به آرامی زمزمه کرد: اونها آسیبی به ما نمیزنند. ما باید نشون بدیم که نمیترسیم. پیر مرد به دنبال اونها وارد حلقه شد و ویولونش رو برداشت و دوباره موزیک عجیب و شیرین و سحرآمیزش فضا رو پر کرد. بازرگان جست و خیز کنان به اونها پیوست. آهنگرم با اونها همصدا شد. اما ناگهان رهبر کتوله ها ویولون رو کنار گذاشت چاقوی بزرگی رو از کمرش بیرون کشید و شروع به تیز کردن اون روی سنگ کرد. وقتی که چاقو به اندازه کافی تیز شد، مرد کتوله بازرگان حراسان رو محکم با هر دو دست گرفت و موهای بلند و خاکستری اون رو تراشید. بعد همین کار رو با آهنگر کرد. اون دو دوست خیلی ترسیدند، اونقدر تعجب کرده بودند که جرأت اعتراض نداشتند. مرد کتوله با رضایت از رفتار اونها خندید و دست اونها رو نوازش کرد. بعد اونها را به بیرون دایره آورد و با دست توده زغالی رو که پایین تب قرار داشت نشون داد و بدون هیچ حرفی اشاره کرد که هرچی زودتر جیباتون رو پر از زغال کنید. اونها این کار رو با عجله انجام دادند. حالا هر دو اونقدر گیج بودند که هیچ کاری به جز اطاعت نمیتونستند بکنند. وقتی جیبهاشون پر شد کتوله پیر راه خروج از درخت رو به اونها نشون داد. دو دوست دیگه نیازی به خدافزی مجدد نداشتند. اونها تمام راه رو دویدند. از درخت بیرون اومدند. کمی که رفتن به یک مهمونخونه رسیدند. هر دو تا دوست خیلی ترسیده بودند و از صاحب مهمونخونه خواستند که جایی برای خوابیدن به اونها بده. اونقدر خسته بودند که نتونستند چیزی هم بخورند. با تمام لباسهای خودشون روی تخت خواب حسیری دراز کشیدند. در حالی که مقدار زیادی زغال در جیبهاشون بود وقتی که صبح از خواب بیدار شدند ناگهان متوجه شدند که به طور موجز آسایی همه زغال ها به طلا تبدیل شده. در شادی و حیرت فرو رفتند. آهنگر در حالی که فریاد میزد، با دست ضربه‌ای به دست دوستی صد و گفت: "بالاخره ثروتمند شدم. همه اینا رو مدیون مرد کتوله هستم." حالا میتونم با دختری که میخوام ازدواج کنم و میتونم یه خونه داشته باشم. تاجر دا وقتی دوستش با هیجان صحبت میکرد کاملا ساکت بود و تاسف میخورد که چرا جیبهاشو بیشتر از ذغالای سهرامیز پر نکرده بود. اما یه دفعه متوجه آهنگر شد و دید که سرش کاملا مو داره. بعد به سر خودش نگاه کرد و دستی به سرش کشید. دید موهاش سر جاشه. موهای های اونم دوباره به حالت اول برگشته بود. تاجر گفت این حقیقت داره که ما تونستیم از این حادثه جان سالم به در ببریم. اما من حاضرم هرچی مو دارم بدم تا طلا به دست بیارم. به هر حال بعد از همه اینها هم مو داریم و هم تلا حالا هر دو دوست پول کافی برای رسیدن به آرزوهایشون رو داشتن. آهنگر با دختر محبوبش ازدواج کرد و یه کلبه کوچیک خرید و با رضایت و شادمانی زندگیش رو ادامه داد. تاجر پولش رو در تجارتخانه خانه به کار انداخت و تونست سود خوبی ببره. اما هیچ وقت راضی و خوشحال نبود. یه روز تاجر دوست آهنگرش رو ملاقات کرد و علت نارضایتی خودش رو به اون گفت. اون گفت: ما باید بیشتر از این طلا دست بیاریم. من میدونم که شانس من سه برابر شانس توه. من میخوام باز هم امتحان کنم. چشماش از شدت طمع میدرخشید. آهنگر گفت: "به همین چیزایی که داری قانه باش." تاجر در حالی که سرش تکون میداد گفت نه نه باز هم با من بیاد تا به داخل اون درخت بریم و از کتوله ها تلایی بیشتری بگیریم حالا ما میدونیم که زغال ها به طلا تبدیل میشه بیا یه کیسه بزرگ برداریم و لباسی با جیبای بزرگم بپوشیم اما آهنگر قبول نکرد خندی گفت من بیشتر از این نمیخوام اگه تو میخوای یک بار دیگه شانس تو امتحان کنی دوباره پیش کوتوله ها برو ولی این بار باید تنها بری. بنابراین بر این با رسیدن شب تاجر آماده شد که حرکت کنه. روی شونه های گوزدارش یه چمدون بزرگ گذاشت و یک کته کهنه با جیبی بزرگم پوشید. وقتی که نزدیک تپه رسید مثل دفعه قبل صدای موزیک سهرامیز رو شنید. بعد دید که کتوله ها دایره وار در حال رقصیدن و جست و خیز دور پیرمرد مرد ویولون زن و جست و خیز میکنن یه بار دیگه تاجر به مرکز دایره رفت دوباره موهاش رو با چاقو بریدن و زغال ها رو نشونش دادن. اون همه جیبهاش رو پر کرد. اونقدر که جیبهاش سنگین شده بود. بعد زغال ها رو داخل کیسه ریخت و اون رو طوری پر کرد که نزدیک بود پاره بشه. بعد از اینکه به اندازه کافی زغال برداشت، راضی شد و درخت رو ترک کرد. وقتی به مهمونخونه برگشت، از فکر تلاهایی که فردا صبح می‌بینه و از فکر اینکه این, که این زغال ها چقدر ثروت اون رو زیاد میکنه نتونست بخوابه. مرتب با خودش تکرار میکرد من ثروتمند خواهم شد ثروتمند من ثروتمند میشم من یکی از ثروتمندترین مردای شهر خواهم شد بینکه خوابش برد اما تمام شب روی تخت حصیری از این پهلو به پهلوی دیگه غلت میخورد و به محض شنیدن صدای خروس از خواب پرید در یه لحظه چشماش رو باز کرد و فقط به فکر طلاها بود و بدون معطلی کتش رو چنگ زد رو خالی کرد اما در حالی که میلرزید دید که دستاش هیچ طلایی نیمد فقط تکههای زغاله اون میلرزید بعد بدشانسی خودشو باور بکنه با فشار دستان کسیفش رو به داخل کیسه کرد و تکه های زغال رو بیرون آورد. با خودش گفت نه نه این حقیقت نداره مرد کتوله این بار به من کلک زد کلاه سرم گذاشت. بعد عبراش رو بالا انداخت و از ناامیدی گریه کرد. صورتش کاملا سیاه و کسیف شده بود. پیرهن زیبا و جلیغش کاملا از بین رفته بود. یک دفعه چشمش به آینه افتاد. خدایا، خدایا حتی یه تار مو هم روی سرش نبود و اون کچل کچل شده بود. تاجر با ناراحتی فریاد زد. تمع زیاد با من چه ها کرد. کوتوله بالاخره منو تنبیه کرد. به محض اینکه مهمونخونه رو ترک کرد به طرف خونه آهنگر رفت چون در این شرایط احتیاج به کسی داشت که احساس اونو درک کنه و به اون آرامش بده بعد از اینکه آهنگر ماجرا رو شنید گفت ما با هم زیاد سفر کردیم من خیلی متاسفم که اینطور طور شانسی آوردی اما ناراحت نباش تا هر وقت که دلت بخواد میتونی در خونه من بمونی بازرگان در منزل آهنگر ماند و زن آهنگر کلاه زیبایی برای اون بافت تا روی سر تاسش بگذاره. زن شوهر جوان تا جایی که تونستن به شکل های به اون مهربانی کردن و تا اینکه بازرگان ناراحتیش رو کاملا فراموش کرد. بازرگان بعد از اون دیگه سعی نکرد برای سب بار شانسش رو امتحان بکنه چون اون دیگه کاملا عوض شده بود. اون در حالی که غمگین به سر تاسش اشاره میکرد گفت دوستان عزیز من: کسی که همه زندگیشو صرف به دست آوردن طلا بکنه هیچ وقت به خوشبختی واقعی نمیرسه. اما اگه شما عاقل باشید همونطور که هستید یاد میگیرید که به آنچه که دارید قانع باشید و قط شناس.